این داستان دوازده پنجره روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون شاهزاده خانومی بود که توی قصر زیبا زندگی میکرد. یکی از برج های این قصر دوازده تا پنجره داشت. شاهزاده خانوم اغلب به این برج میامد. چون با نگاه کردن از پنجره میتونست تمام قلمرو به حکومتیشون رو ببینه. از اولین پنجره بهتر از دیگران میتونست چشم انداز بیرون رو ببینه. از دومین پنجره باز هم بهتر و دقیق تر میدید. و از سومی باز هم بهتر و دقیق تر. همینطور پنجره های بعدی هر کدوم بر قدرت و گستره بینایش میفزود. تا حدی که وقتی به پنجره دوازدهمی میرسید همه کره زمین رو میدید. و هیچ چیز از نظرش پنهان نمیموند از این رو شاهصاد خانوم به خودش میبالید تسلیم هیچ کس نمیشد و همیشه میکوشید که از همه سر باشه با این همه اعلام کرده بود که حاضر همسر کسی بشه که بتونه خودش رو مخفی کنه و شاهصاد خانوم نتونه به مخفیگاهش پی ببره البته اینو هم گفته بود که اگر کسی ادعا بکنه قادر خودش رو مخفی کنه و در عمل نتونه سرش رو از تنش جدا میکنه. تا آن زمان نود و هفت سر روی چوبهای جلوی قصد آویخته شده بود و دیگه مدتها بود که کسی جرعت نمیکرد داوطلب این کار بشه. شاهزاد خانوم کم کم به این نتیجه میرسید که دیگه تا آخر عمرش کسی به سراغش نمیاد و نمیخواد باهاش ازدواج بکنه. تا اینکه روزی سه تا برادر اومدن و گفتن میخوان بخت خودشون رو بیازمایند شاهزاده خانم پیشنهادشون رو پذیرفت و برادر بزرگتر آدم کوته فکری بود که خیال میکرد اگه در گونی زغال پنهان بشه شاهزاده خانم رو نمی‌بینه شاهزاده خانم از همون پنجره اول اونو دید و اون بیچاره بیدرنگ به سرنوشت بقیه دوچار شد دو فامین برادر خودش رو در انبار قصر پنهان کرد و شاهزاده خانم از اولین پنجره اونو به آسونی تونست ببینه. بعد از دستگیری سرش رو بریدن و روی نود و چوب نصب کردن. برادر سومی که اوزار و وخیم دید از شاهزاده خانم یک روز مهلت خواست تا وضعیت رو ارزیابی بکنه و و درخواست کرد که سه بار بتونه بخت خودش رو آزمایش کنه و اگر از این میان دو بار با شکست روبرو شد شاهزاده خانم از کشتنش صرف نظر کنه اون جوونی خوش سیما بود به همین دلیل وقتی فرصت بیشتری خواست شاهزاده خانم موافقت کرد ولی بهش گفت به هر حال که موفق نمیشی صبح روز بعد جوان نشست و فکر کرد تا بتونه خودش رو در جای پنهان بکنه ولی عقلش به هیچ جا نرسید. دست آخر بی هدف و از روی نامیدی توفنگش رو برداشت رو از خونه بیرون رفت. چشمش به یک کلاق افتاد که روی شاخه درختی نشسته بود. اونو نشانه گرفت ولی کلاق گفت خواهش میکنم به هم شلیک نکن. روزین احسان تو رو جبران میکنم. جوان دست کشید. و به راهش ادامه داد تا به یک ای رسید که ماهی بزرگی توش داشت شنا میگرد. جبان خواست به سوی ماهی تیراندازی بکنه ولی ماهی با صدای بلند گفت به من شلیک نکن روزی این لطفت رو جبران میکنم. او هم ماهی رو رها کرد کمی بعد روباهی رو دید که لنگون لنگون راه میرفت. تیری به سمت شلیک کرد ولی به هدف نخورد. روباه ناله کنان گفت: آه، لطفاً بیاین تیغ رو از پای من در بیار. جوان تقاضای روباه رو عملی کرد، ولی بعد از اینکه تیغ رو از پاش در آورد، حواس کرد به خاطر پوستش روباه رو بکشه. حیوان دوباره بهش گفت: خواهش میکنم منو نکش. خدا رو چه دیدی؟ شاید یه روز تونستم بهت کمک کنم. جوان اون رو هم رها کرد. نزدیک غروب بود که به خونه‌اش برگشت. محلتش به سر رسیده بود باید روز بعد خودش رو از چشم شاهزاده خانم پنهان می کرد هرچی به مغزش فشار برد به جای نرسید نمیدونست به کجا پناه ببره تا از دید شاهزاده خانم پنهان باشه دست آخر به یاد کلاق افتاد راه جنگل رو در پیش گرفت بهش گفت من دیروز تو رو از مرگ نجات دادم. حالا زندگیم در خطره. به بگو چطور میتونم خودم رو پنهان بکنم. شاهزاده از مخفیگاه من باخبر خبر نشه. کلاغ مدتی طولانی فکر کرد. دست آخر بهش گفت راه حلی پیدا کردم. بعد رفت تخمهای لونش رو برداشت. پوست کرد و روی جوان رو با اون پوسته پوشون. بعد اون توی لانه خودش پنهان کرد و خودش هم روی اون نشست. شاهزاده از پنجره اول نگاه کرد و چیزی ندید. نگاه کردن از پنجره دوم و سوم هم بی نتیجه بود. وقتی به دهمی ده می رسید کمی دلنگران شد. بالاخره از یازدهمی پنجره جوان رو پیدا کرد. شاهصاده خانم دستور داد کلق رو بکشن و پوستای تخم را رو از روی جوان کنار بزنند و اینطور شد که جوان پیدا شد. شاهزاده خانم گفت من قول داده بودم که بار اول از کشتنت صرف نظر بکنم اما مراقب خودت باش روز بعد جوان به دریاچه رفت و با صدای بلند ماهی رو صدا کرد و گفت من زندگی تو نجات دادم حالا نوبت توی که به هم کمک کنی به هم بگو چطور میتونم از نظر شاهزاده خانم پنهان بشم ماهی مدتی به فکر فرو رفت و گفت: آهان، یه راه حل پیدا کردم. امترین جا شکم خودمه. شاهزاده خانم از تک تک پنجره ها نگاه کرد و تا پنجره یازدهم به هیچ نتیجه نرسید. انگار زنگ خطر رو براش به صدا درآورده بودند. ولی وقتی از دوازدهمین پنجره نگاه کرد، مخفیگاه جوان را کشف کرد. شاهزاده ساده خانم دستور داد ماهی رو سید کنند. شاه ساده خانم بهش گفت دو بار شکست کافی است. بار سوم سرت روی صدمین چوب خواهد رفت. در آخرین روز جوان با افسردگی و ناامیدی به مزاره اطراف رفت. روباه رو دید و بهش گفت من یک بار زندگیت رو نجات دادم. حالا زندگی من در خطره. تو جایی رو میشناسی که من بتونم خودم رو از دید شاهصاد خانم پنهون کنم. حالا میتونی یکی از اون جاها رو به هم نشون بدی که شاهصاد خانم اصلا نتونه اون رو کشپ کنه؟ روباه به فکر فرو رفت و گفت این کار دشواریه، ولی بالاخره به نتیجه میرسم. بعد روباه راه افتاد و جوان رو با خود به کنار یک چشمه برد. روباه خودش رو در آب چشمه انداخت و وقت بیرون آمد به شکل یک ماهی فروش در اومده بود. بعد به جوان گفت که داخل آب بپره. وقتی جوان از آب بیرون اومد به یک موش دریایی تبدیل شده بود. ماهی فروش موش رو توی زنبیل خودش گذاشت و به بازار شهر برد. موش کوچولوی زیبا توجه مردم زیادی رو به خودش جلب کرد. قیده زیادی دور ماهی فروش جمع شدند. سر و صدایی که به خاطر این موش عجیب و زیبا بلند شده بود به گوش شاهزاده خانم رسید و اون هم به دنبال فروشنده فرستاد. شاهزاد خانم اونقدر از موش خوشش اومد که بیدرنگ پیشنهاد کرد با قیمت زیادی اونو بخره. فروشنده موش کوچوری رو که فروخت بهش سفارش کرد به میان موهای شاهزاده برو و بی حرکت همونجا بمون دیگه کم کم میخواد به سراغ پنجره بره شاهزاده خانم دلش میخواد فروشنده ماهی هرچی زودتر از اتاق بیرون بره چون وقت بازدید از پنجره ها بود بلافاصله بعد از خروج ماهی فروش شاهزاده خانم به طرف پنجره ها رفت یکی پس از دیگری از بین اونا نگاه می کرد تا به دوازده می رسید ولی نتونست مخفیگاه اون جوان رو پیدا کنه خیلی عصبانی شد از فرط ناراحتی سرش رو به شیشه و پنجره می کوبید. شیشه خورد شد و قصر به لرزه افتاد وقتی از جلوی پنجره ها کنار می حس کرد چیزی لابلای موهاش گیر کرده چنگ انداخت و اون رو از بین گیسوهاش بیرون کشید و دید همون موش کوچولوه، اونو گرفت و کف اتاق پرتش کرد و گفت برو گمش که رو ندارم. ماهی فروش که بیرون در وایساده بود موش رو برداشت و با عجله به طرف چشم رفت. اونجا هر دو بعد از اینکه توی آب فرو رفتن دوباره به شکل اول برگشتند، جوان از روباه تشکر کرد و گفت کلاغ و ماهی در برابر تو حیوانای ای بیشتر نیستن. تو واقعا با هوشی و توی حق زدن دست همه را از پشت بستی بعد از این ماجرا به قصر و نسل شازده خانم رفت که دیگه تسلیم سرنوشت شده بود بعد از مدتی جشن عروسی با شکوهی برپا شد و شوهر جوان یکی از بزرگان اون قلم شد اون هرگز به همسرش نگفت که چطور تونسته بود خودش رو پنهان کنه و چه کسی توی این کار کمکش کرده بود. شازد خانومم فکر می کرد همسرش با هوش و معلومات خودش تونسته توی این کار موفق بشه. حتما قدرت اون بیشتر از منه که دوازده تا پنجره در اختیار داشتم.